بسم الله الرحمن الرحيم الله آله با در توی بحث اوجید خبر و آفر در دو بخش بحث اوجید یه هست اوجید دیگه و تهمار در کلمات شیف مردون شد که حدودا مثلا نو برمینه شده از خانم از دو رو گفته رازش ما نبود در این درست نیست این مخلی مخلی این نیست و منشه اقتدار نهر نه، من رو هم از ها جمعه خود رو که ما هر دوباره رو نمیدونیم هر دوره ابن مقام اسواق محقق در معتبر و در از کتب ایشانه و این ساتر اون چی که از این شیخ در خصوص آمنه اونی نقطه که ایمان ساده تنبوت هم, هم در... که اگر در مطالب این رواید ما نبود بریم، ما با انهلی خدا مراجعه دارم به نظر این چود این هم اداره دارم این ما رو سه یک از آن شده مارب و برناس هر دو سیره جمع بوده من ما تا مارب و اما به ما من که خیلی یاد از سالش یا در برده از یا بعد از مقاطرش اون اولیش ارام ها رو می احنا باشه اگر درم توی برنامه کامپیویتر ما سکنه عدد باشه من،, من تو ذهنم این بودن خواهدن رو بشه من تو ذهنم تازه ای این بود اینکه. اما موسانده اعباده کنیم هر دو رو بوده من به احسان اعباده که خوب بود. نا من توی ذهب نمازم رو به اولی را از دومیش این که الان هستی از در روز دیگه این از مراجعه بوده بخواستم بگرد توی وقتی که آورد باید دیگه دارم اما این نوسته که الان چواب من رو ربا باید اما این نوسته باشیاری در فاشیار نه نه روشید در برد اما فیض آسوس زینه من ازش یک تابع جامعه اهادیس ها ایبورژین نیاز دارم. بنظرم رویه من اینطوری. اما واقعیت رویه از را می‌بینم. حالا اینا هردوش را بودند. حالا به هر حال ولاده ولاده ما ولاده ما ولاده نه. ولاده نه ولاده نه. جمال احادیش هم بردنم رویه دارش جمال تو زهن من, من, هم هم چو چو من الان این دلد دلد. چون رویه دا ای دارم به هم قدرم تو توی هم داختی دار رویه چون من ارز کنم الان حادث اینو خود به درکت در میکنونی کنم چون نمیشون؟ ازوان نزل از دکون حادث از الله تجیدون اخوش مراقیم و همین این از کجا دارم؟ اما روان خوده یه نصف بدیلیه در هیچ جدی نشان می‌شد. محمدزاده انصاری کمی تری هم که او رو. تری هم که من کمی حالا اینجا یک شکیل جهان. این که من میگم رو خوند این چاپی که خوب همی رو هر رو خوب ده آمین همیم رویت ذهن هم اینجور رویه از این شد به این که حالا مرمون مختبر از کردم اینه دقت بکنه کسانی که بعد در در از اینکر آمدن بایدم بیرد بودم اشتباه میشه لازم نیست هر کسی در محقه بخصه تقلیق محقه کرده تقلیق نیست آجیبان به فهمه گفتی برموستاده در زیاده جاسب نکرده بکنه میفهمیدن و نه از مجموع اکرام محقه از چیل محضوعی اعتبار بوده ساخت این همه محقه فهمده لیکن انصافت از در این محقه درست نیست و خابل اعتماد نیست ما در این بحث واضح شدیم که ازا شکار کار بکنیم. به این واقعه مجمع که روشی بیون ما هرزشو کنیم ما به خودمون نهده یکی برای حدیث و چرا های حدیث محجوب شده شده حدیث نشده یعنی در محصر دیگه نهده اونی که ما در حدیث هست و و تاریخ ایتراکی باید باید که هست که خلاصش این صورتی که در درکوفه در همین محن دوم که زمان امام سایت باشه مجموعه و برمی رو ماملی این مجموعه هم الان ما داریم همون زمان هم بوده ما در کتب احضر سنبی و روح علی حال علی داریم, داریم که ما ندرکی آدم در کتب زیدیه هست در کتب اسماعیلیه هست در کتب خود ما مثل میره واسه سکومی و جیده هست مصند زی هست از اونم انحلیه ما یه محیم آلیکی داریم انحلیه انحلیه سلام که از کردم طب توزیش این طبی واده خارجی ما سهت و سهت و اولینش به بزدار سجاد طبقی زی از پدر محضر سجاد از از این ما از امام باقیه چیزی نداریم از امام باقیه ربایات محمد بن قیص که میاد نرموی کنه از امام باقیه قضایی هرمی نوری مصند نیست یعنی خرده دین کتاب سکونی با که کتاب محمد بن قیص اینه محمد ابن قیص سوریه انتبیلی افر با قضایی رو باونیم تو دفت کنیم نمیگرد نه حبی جرفر قال حدیس نه حبی قال حدیس نه حبی قال, حبی قال حبی علی حبی نه علی نه اینطوری نیست لذات به میاد که مثلا کتاب قضایی ها بخش قضایی های کتاب این کتاب خود امام باقر گفته باشند به محمد النقلیست خود امام باقر گفته باشند که امیمون دقیقی خود کتاب رو داره. سند نداره حدی امام حبی عبیل نداره تو این کتاب محمد بن قیز که اسطلاح اسم اسمش قضای عمیر بوده که این قضای عمیر و رو محمد ابن ما باقی امام باقیب انه همیه نقوم حتی که در محمد ابن قیز, که محمد ابن قیز عبی جفر قاب این که خادم کنه برای عمیر کار زداره اسمی برد اما شراحید شو بوده که این از هم کتابیست که منصوب و بردی امام ما الان طور مسنب تو امام ایمام باقی از از امام صادق داریم زیاد داریم چه از مجموعا مسانیدی که ما از ایمام صادق داشته باشیم چیزی در روزش آزگیس یا سیتا باشه که اشهر ایمام این در افلاح سکونیه و اونی که بازا شهرت داشته و از بخش رو در کذبه عباد بختری به این دو تا مشهورند البته ازبته کتاب سکونی بانوان درست و قابلی حسابی که ما نرو شده خب نه به عنوان که ضعیق است و پیه کلام از موسطن جرپن علیه داری تو این زمان امام یک از نروهای همین از اولاد عمر نری از درمیش فردن اینوان عمر داشتن از اینوان موسطن عمری علا علاوی چون اسم جرپشون عمر بود و فرزان در نیوم مومین بود به شهر عمری یا علالی میبسن اینطوری بود و در کتب انصار بیشی بودن عمرو لأفرش چون این نسب داره این شخص اصلا سادات زیادی عمری ها و علالی ها بودن عمری علالی از نشه این شخص دار بله این اینکه یک عمره نهلی بسر از سجاد اونم عمر داره از سجادم علیه عمر حسین فرزند اونم نصب داره اونم تو انصاب درست داره تقرد که امین؟ عمر افنه حسین فرزندش در کتبه انصاب بگیم میگن عمر الاشرع و اون میگن عمر الاطرس استفاده شکنی شده تک عمر الاشرع دارن این عمر الاطرس اونی که فرزنده انیرو المومین عمر الاطرسه اینه که فرزا در حضرت حجیزازه امرال اشرفه سرشم بخاطر مادره شده یه این ها خیلی بحث نصری در از کیف مارکان اونم یکی از نباه های اونها نباه عمر اونم اون یک کتابی از قدرش از آبا یرمشدار یرمالیه این داده اصلا همین کتابی که این شخص داده یه مقضوع برایت شد فیمابر از حضرت رضا داریم این همین آبا یرمالیه این همون رواز تو اون عمر یه علایی نهارو کنه میگرمم شون نیمخوام مارد بشم فرمان به همش مقدار ازمالی بشاره بکنم بعد از امام رضا زیاد داریم بیش کلون بعد درزه از رزا نداریم چون از رزا شهری هموندن که بینامام زیاد مفرد بودن این کسانی که این مسامید رو از از رزا نمرکنه تو امجه که ما میدونیم بحثت رزا بزرگاهز یا داره نیست نیمونیم از بزرگان اصحابی از اون بزنگی مثلا این هم چیز غلیبیه شاید اون شب تا 70 تا, تا ما کتاب داریم که محصن از رضاست همین حبیه هم آباهی هم اما این 70 تا 80 تا چون یک از اجلال از نیست مثلا بزنگی مثلا این با مثل. نیست یا تحوان همین رضا همین حبیه هم آباهی نداریم این هم یکی از ا پس ما یه مجموعهی رو من حیث و مجموع به اشکال مختلف و در جای مختلف زهیه ها بیفت شد، اسماعیه ها بیفت شد، ها بیفت و سونیه ها بیفت شد منصور و منظور مؤمنه خود هم این ما داشتیم و به صورت کتاب هم داشتیم کتاب از سنان و قضای و الاحکام به صورت کتاب هم داشتیم شواهدش نشون میده که مخالفت امام باقیل با قسمتهایی بوده کم بوده و احتمال دادیم که امام باقیل صحابه الله علیه این قسمت قضایی این کتاب رو به محمد نقیط بجری اجازه دادن این در حقیقت هم کتاب به اجازه حضرت بخیم نداره و رضا اگر به احتمال داره که مزلا که زمان امام صادق میاد احساس ما اینه که جبه، عمومی عمومیشی علیه اون کتاب شدیدتر میشه یعنی یه وقت شروع از زمان امام صادق کتاب از میلایش امی ما خارج میشه و این کاری برای آبزی میلایش ما باشه کتاب مدعو بشه مثل دنیومانو یه میشه حالا که عواملی بوده سیدی ما الان نمیتونیم موفق بشیم برای کشون اون عوامه چون واقعا این مقدار زدش موفقه مثلا از بعضی عبارات میشه زیدیه که عبدالله محض اون وقت نمایند شهور و رحبه که مقصد میشه عبدالله محض پسر نبی امام مشتباز که چون هم پدرش هم مادرش عربی و قاتمی بودن عبدالله محض بودن پدرش پسر امام مشتباز مادرش هم دختر امام مسئله رسوده پدر که پدر عبدالله، چون کسانی بود که در صحنه کربلا حاضر دوباره سرود شد و بود. در بزرگ عرضه فسی. یشون که چون یا نعرضه فسی تا گوناپید کرد بدانیشی. این بیشتره. حسن مسلمان اینقدر پیدا نیست. یشون هم در روز آشورا حاضر بود مجبور شد چند نفری بود که از صحنه کربلا جام به در بودند. هم حسن موسنناش. که دارمان سید و شهده است باختر سید و شهده بودیم و مجبور شد چون مادرش زن امام مشتبه از اون عشقه کلب بود یک از اون ورسای اشاره لشکر آمده سر به اصدا حالا که اشاره بساطر تر ببینید ببین مورده حسن موسنا در اون جریان ساله بود و آمد مدینه این عبدالله مرس اون وقت به دنیا آمده بوده نیکنه بود. عبدالله. امام باقی امام باقی مادرشون دفتر امام بود سر امام. علیه. و آله هم محض بودن دفتر امام باقی هم عدوی فاتم عبدالله از امام بزرگتر بود لذارشون در خاندان حلیه نقی صادر اولین کسی بدونی که نقی حضرت, حضرت حضرت زهرا او عبدالله محض بفتن و هر این عبدالله مرد خودشم در از آشروت هرولو داره که زهن هم نیست این در در در دوتر باشه احتوانم بوده پدرش همون اتجار این بعد از جریان شهادت زید و بعد از پدرش زیدی و دوروری بیشون کم و لذا اصولا تو زفر بکنه در اون زمان تدیجا انقلابی های ساشیعه و انقلابی عبدالله مرده بودن و لذا مثلا اولین قیام و سلو شهده انجام دادن اما از سال رای صدوری سرپنگ عنوان نسلی که یا اهلینی آنوان قلابه خاندان حسنی نه حسینی. حسنی ها اول حسنی هم همین عبدالله به که بعد در که یا من رفته های که در این لحظه محضرشون حسنی تا بیدن محضرشون حسنی هم. خود ده استلاعه استلاخوز من که تاسیس دولت دلیلی در ایران تا بهش حکمیه یه خودش به الان چون یه دور ذروخ سازی است خیلی محدود و محدوده انصابشون هم خوبه یعنی انصاب خوبی دارن و تواتولی نشون این سادات تواتل در اینا ما چند شهر داریم مثل بروجه درشت که کسازاده تواتلی در ایران حکیم اما در یمن محضر سازادشون تبا تبایی هم یا حسنی همه غیر تبا تبایی هستن اندرکه اقماکان عبدالله مرس اولین شخصی از سازاد بنی حسن که با آلمان رخبر زیگی امام زیگی ها محضر میشه و دو پسر ایش یکی محمد نفسده که یکی در خود مدینه یا مسلم همه میکنه وقتا ابراهیم پسر از اگرشی در از از از این مخیانه تا دیگه میشن که دو رفت قبل از زخیان کرد تحسیص محظمات که مثلا پس دو ماه دیگه با پیان میکنه زمان منصور در که در منطقه باخن را کشه شد. شد قطیل باخن را مثلا باخن را مال ابراهیم پسر عبدالله محضه و منصور اصول داد که عبدالله محض و ادهی از سادات معظم سادات کمی موند از سادات بنی حسن با سواه شده کن به با که که زن ها مرد ها بودن کوفه نزدیک کوفه بین کوفه و این واسط کجا هاشمیه. زمین رو کندن چال تو زمین تو اونجا گذاشتن که شبون چند کسیتا داره بعد اون دا دستو رو رو خراب خواه کردن همون احیا همون زرده بگو کردن که خود این عبدالله محض اونجا دوزه دو این زنده که از اونجا زرده بگو غلطت عبدالله محض کتاب خودشون لهم میکنه که یه مسئله رو از عبدالله محصد پرسیدن گفت یا ولد یا ولد افتی به کتاب حاس کتاب علیه این کتاب علیه زادن از این زمان که زمان امام صادق هم هست این کتاب رو خصوصا زیدی ها ملیار امامت خودشون قرار میگذن و فتواشون رو این کتاب بود بقیقی حالا این آمد سیاسی بود خود کتاب مثلا هیچ تقییه بود یه مجموعه عواملی ما داریم که نشون میده یک یعنی شواش کتاب از محیط ترهنگی ایشیه اصناعه خارج میشه این نکته مهم اینه حالا اون چرا که چیزی شد, شد نفهمیم چون این مباحث بارا محضر شده برای این بارا محضر میکنیم چیزی شاید نقاط تاریخی شوشن نشد یه خیلی شهر داره وقتی شهرش نیست با این که این کتاب رو ارز کردن زمان کولیمی که زمان صدو و وجود داشته در خارج بوده مثلا متناول بوده بزرگان ما نرمیده نمیده از این کتاب نرمیده از کتاب که منسوب از رحمی رو مؤمنی یا حالا نسبت داده شده به برو یا نسبت دادشت به حالت در اول یا نسبت شده به عبدالله الله سر عبی رافق الى آخر ظاهرا زیدیه با این کتاب عنوان داشته روشن شد حالا شایدون این جهاز بوده ایمه علیه را. البته در قضی از روایات ایمه می گفتن اونی که ملیار امامت این کتاب علی نیست اینی که در کوفه منتشر شده در کتاب علی این ملیار امامت نیست کتاب در کتاب اولی که حضرت سلوش نویشته امزا رسول الله در رواد داره منفل و فی منفل و باورا مخاف خیلی از دلار شنید یعنی از دولب پکنبر افتر منفل قفی این کتاب و کتب آبا حلیلیون به املا رسول الله یعنی از زبان فیلم برمان سمین رو شنیدن برشن این ما اصلاح این که مدیار امامت اون کتاب علیه. نه این کتاب علی این کتاب علی بازاری بوده کتاب کتاب متعارک بوده و هر حال خوب دقیقه فرمانید به ذهن ما میاد که ام امام صادق تدریجا مطالبی رو از اون کتاب نمشی میکردن حالا یکی از سیاسی هم بهش اضافه شده بود که از سران بردر شواردش ما داریم اصلا ما امام کتر برداریم این میگن همه اونه این نگرد توی اقراضی امام واقع مطلب این طور لیکن ما دار اصلاً. داره اصلا توی کتاب شک این کتاب خیلی عجیبه همون کتابی که در بازار بوده دیگه اصل با همین رو دکنیم متون تاریخش خیلی طولانی میشه و الان این مجموعه به صورت متناسر به ما رسیده بردش باقر کتاب هم نمیدونیم راستی به اون بردی که کتاب علیه در کردیم در موجوده حاضین اومان موجوده تفریح هم داره, داره. سند نرمو کنه همین کتاب علیه و زواهدش اینه که در کتاب دائم اسلام ازش آدم احساس میکنه که این کتاب حلیه ظاهرن در اختیار یکان بوده نه از کلمشون رسوهش به این کلینی و صدوبه حاضین اومان مصری به لحاظه رسوه به این کلینی و صدوبه هستان خدمتون که به ذهب اینطور میاد که در کوفه از بین همه سنت هم فرح کوفه رو فرح عبدالله ابن مسعود و علی ابن حلی طالب میزونن اتا خود ابو حنیفه هم معطلبن که متأثر بینید این سوران میاد فرح کوفه متأثر بینید و بزرگ بود احتمالی که ما میدین راجب این حدیث ادانه در از بخواب خاضست هستون لا تجدود و حکمها فی مارو میهننا این ناظر به همون مرحله کوفه باشه که مجموعی امور و بندیر المومنی چه به صورت روایت و چه به صورت کتاب نهبی میکرده این بکن که حمل کوفه در زمان امام ساله بقیق رو و الا مارب و ببینید در همون کوفه از امیر المومنین چه نهبی میکنن در واقع لا چون سیر جمع آمده ولی سیر جمع در سراییه جمعی سرودی درش لحظه هیئت جمعی نمیشه وقتی یک عتبه قلمان نه هر نمودار است یک گانه لاکن اکثر عمر معلوم است ولی اما مجو نمی‌د لكن نیست که در اینجا نکته‌ای باشه دقیق نیست کی نوتی باشه مثلا در کوفه مجموعه اهل کوفه اهل مجموعه اهل و یک نکته دیگر که من دیگه علاوه اضافه بکنم این خیلی نکته باشه در میانه شهرهای مختلف دنیای اسلام به لاوتنتی و حضرات خب طبران ماشیه کوفه قائم و اون شهر اخری که پرهنگی احضه به در اون پرش می شده و موضوع بحث بوده کوشه بوده هر سر مردمان امام سجاب کی او صحبت ما که اواز شباشتی بشروتن به نمله هی صحفت ها که نرمی کردن ساکن کوفه بودند مثلا فرس دعای مفصل ابو همزه سومالی رو این رو ابو همزه که احضی که در خود مدینه اهل بیت و امام معتقدشی داشت حالا در بیر کوفه چند در یعنی کوفه که چند بار کردن از سال 80 تا سال 50 این محل تولد اصل تفکر شیعه است این محل اساسی ت벌د افکار شیعه کوفه است بین سال‌های 80 تا 50 این ت벌د اصلی تنازه از که این مادر که خب یه مرزا زمان ایمان سجاده بقیه شما مثلا در بزرگان رو بات از ایمان و ایمان بیشترین بعد از کوفه با یه زیاد بحث است بعد از اون مدینه است مدینه بیشتر از خود در یک خاشم ازیه محدودی ده. مثلا ما در مکه یه نفر عبدالله رو میمون okay. که اهل مکه و رباس امام رو ساده داره یه نفر منحصه بکردیم کلی همونحصه تازه امام باقید من چهت هم کلا تو مکه چار مداریم کل شیعه در مکه چار مدار در, در خیلی بیشتردیم از خسارت مکه الان یه حاله میگه کل شیعه در مکه چار از این کار نفره یک نفره شابیه از دولار نمیونه بعد شهر را نگاه بکنم من شما به یک وقتی را رو ببه قوم هم شما از سر دیگم قوم با آمدن اشاره قوم با آمدن حواصل در آمدن که دو تا قوم شما یکی شما و چون این ها قوم آمدن قوم رو در حقه با مادن. شهر کردن سر جمع لذا اندر سلطه سیاسی هم قابل روی بود یعنی شما ریاست سیاسی شهر با همین شد اولیشون سعد سهد سعد برادرش سعد جده احلای احمده احمده ده محمده ده این سعده عبدالله ده سعد اولی کسی از این طریفیشون خبر داریم اینه خدمتی که ما عرب بودن یعنی بودن خدمتی ایمان رسیدن نه عبدالله ابن سر ایسر عبدالله بن سر ایشون، ایشون زمان امام صادق آمده و در حال ایسران نشون نمیده کامل اشیده باشه ایسر مباری اما بچه هاییشون پسر محمد ایسران شخصیت سیاسی و احمد مشکس به محمد نیکسا همین شخصیت سیاسی قوم بوده و چنین سیاسی در بوده هم شخصیت علمی ممتاز نه اینکه تقلیدنایی مصنفی بشید واقعا مرد بزرگواری احمد فرادر بزرگواری در یک نظر چنین شناس و از کردن یکی از کسانی که خیلی مهم بود در انتقال تراس از کوفه به قم بدختر و در تنهایی هیچی نیست، در تحسینی این ترس هم در ذهن ما میاد که مثلا که از تحسین گذار انجام نه نتکد در نقل میاد. مثلا ما هاشم داریم. ها نواشیم داریم، اولی میارس حالا از کوفه بگم اما نیست، شخصیت ادی نیست، اون درگذاریه، نقد عبران ناشب ما هرچی نگاه می کنیم از ای این که نقل بکنه و نقال باشه و انتقال میراسوده بوده که نفرد. اما اخوان خودش که از کوفه برد در خون بود رفته کوفه هم میراس ها رو گرده هم میراس ها رو دقیق رفت گرده و هم شناسه بکنه تحصیل بکنه کنوزیات بکنه مقایسه بکنه،, بکنه،, بکنه و تحصیل گذار در خون باشه. احمد احمدی ایشون از طرفون برادری هم داره اون عبدالله عبدالله بن محمد بن که ملقب بوده به دانا دانا و عبدالله نمیذاره ایشون هم همینطور ایشون هم یه مقدار از میراث ها رو از کوفه به او رسیده موعظه احمد, و عبدالله احمد و اما شهادت برادر رو نداره شهادت احمد رو نداره عبدالله شهادت احمد رو نداره اما ایشان شخص کسی حضور هست دقیقاً همین هست امام علی ماشا الله در توکی از اشاغره یا یک قومی رفته مثلا در مدینه خدمت ما مستاد تو ایام حجی شیمده اما شهر اساسی میراس های شیعه کوفرست این شهرها خوب دلکت رو مانید مثل احمد هشعری بسیار دریجه نقاد مسحه یکو حدیثه خودش آرخ آدمه خریه مزرگاه جمعه قبره اینا درسته توشید اما این یک طرح افتکاز های علمی در که پر از دیگر این مثلا شما توی فرصوی مثلا قوم توی قوم از این که مثلا ها شما حوزه هست یه افتکاز های علمی میمونه شما بریم توی که کنکر فرد در شرایط حوزه هیچ کنکر باشه اما یه افتکاز ها و حسولی های ها ها که از معروی نایمی هست میمونه این افتکاز علمی خیلی ارزش عرضش دارد. این غیر از اون شخصیت های علمی که در یک زمان باشن این دوستان واقع اشتباه هست کوفه نقطه اصلا اعتقاض علمیه اما ممکنه به در شخصیت علمی بر ده از مفردات شخصیات کوفه مقدم باشه همون خب قوم یک شهری که زردوشتی بودن و اصلا مسلمان دردن نبود مثلا قوم کونه خیمه خیمه بود منطقه یه بسیار چون دامداریم کردن اسمشو بکنه دو شده. این روز خونه قوم که را همه آق بودیم بود قوم رسولا شهری نداشت. و حتی بعد از آموده نخش تا شهر شد یک شهر معترضی شد در بوده ما بود که شهر معترض بشه نمازجانه بکنه تو دارجانه مومده الان ما که شهرستان از تو نمازجانه یا هستان مراسمی. منبر نماز جمعه رو از مقدار مثلا از مرکز خلافت میوردن خلافت این شهر با آنها شمع رسیم استفاده کده به سال دیویس سال دیویس تا هشتاد منبر رو که هم دیگه برمان شهر سر عسین. اصلا با اینا ترک کردن سال منطقه بود که حالت به اصلا دام حیوان و اینها روز بو فنداری بود و چیز دوشینگه شهر شهر یعنی گوزفن و وبر یعنی چوتو این رو گوزفن دارودن اصلا فدمتشم که این اصلا شهری نبود تا شویش ارتکازه اینی باشه بله بزرگانی از اشاره پیدا شدن نیستر احمد روز اما کوفه خب این ز... ذهنیت در اونو زمان ببرین کوفه نقطهش این بود که ارتکازات اینیشی در شبابان بود هم نزید کرد و مدینه بود من هر یا عمره می‌رسن، خدمت همه می‌رسن تو هر زمان یک نسل بزرگی از بزرگان مثل ابو همزی سوماجی و مثل زهره و مثل محمد همه بزرگان هم دیگه ها تو هر طبقه اده ای از این بزرگان اده ای از این بزرگان بودن وشا به احمد عشقری همین که بختم اشون می‌گوی بیشه وشا که کتاب نرور کنه می‌گه اگر من می‌گنستم که این قدر کتاب، بیشتر نمی کنم فرنیه از رفت تو ستمه یا ستمه نصف مختلفه ربایت ما این کتاب کشیه ستمه از شیف یا ستمه از شیف از شیف داده نه راوی آدی فیها در محصف کلوم یاون حضرت زنی جبران محمد را شما در خط بکنید توی یه محصفی کنید الانش باید محصف نفر بشین یا میگه نه یا نونسد نفر توی مقصد کوفه دیدم توی همشون هم داره نه اینکه محدث عادی کل‌هون یهو حدس این جعبره مونه حالا اضافو به تفاوتی ما بیشترین تعارض که حدیث کوفه داریم بکاستید تا البته چون بیشترین حدیث تو کوفه دار میشود بیشترین خط و خطوط سیاسی هم تو حدیث کوفه داریم مثلا مخضرل یه خط سیاسی بود زراره یک خط بود جماعتی میشد بیشتر... چون بیشتر شیعه بودن دیگه بیشتر که میشن گرفتاریان بیشتر میشه ما بیشترین تا اینو این رو ما یک نقطه در آرزو بلی که ایجاری تا آرزو بگیم بخواستی حد کردیم بیشترین تا ما سو حد کوفه داریم بیشترین حدیث ما سوی کوفه باده شده بیشترین افتقاض علمی ما تو کوفه است لذا ما تو بحث سکرونی رو دقیق بکنیم ما بکنی. میگیم اگر این افتقاض سکرونی توی قم پیشکولی می‌وو کاراین هدیهی قبول شد. گری از این سه کشور که کوفه تو کوфе رو اکثرا قبول می‌شود سرگرم کنیم. بازم ما خیلی تو اکثرا قضا که فاصله که در کوفه روایات زیاد، احاطی زیاد. خطوط خطوط فکری مختلف و بزرگان، نه که حالا با هم شاهدیه بزرگند. یکی از زوران محمد المسلم، بره در یک اباد تالیفی از کسان زورانی که هیچ وقت خارجی هم داشت. مثلا روز پیام میاد در نامزد مسیح کوفه اصلا مظنون به احترامی راه باز، برایشون راه باز نشده. و به شد، خب این است، خب از اجتماعی و احادیثی هم که الان ما از دراره داریم با اینکه نوشتار دراره میسیم از کردیم مربول زداره و رو خودشی نوشته نوشته هاش ما نرسیده کلمات و که به شاگرداش رو خشه شاگرداش نوشتن در رسیده مثل حرید مثل کمی مثل عمر و زهنه مثل عبدالدار و بکر شاگرداش دراره هستن این رو این نوشتار که به ما و در این مورد، با اینکه این نوشتارها مال خود زورانیم، اما حدیث ما بهترین و حسیکترین و متیکترین و متخلفتر از حدیث ما نزدیک، انصافا در زنجیه در ورزورانی، با اینکه نوشتار خودی کمی میلاد حضنتانه، میلاد قولگرای علمی، میلاد تقدیر و خیلی مطالب لاس و عادت سالات لام خاص، لا تن کی مطالب لاس و عادت لعیه مطالب که این مطالب بخته کاملا پاوید علمی به افتیار شده در درده اوازه که ایشون از خیلی در ممصادرتی اصلا تقیید بود اشارید حکم در خطیبه بود این ترده هایی نبود دیگه زمانی ممصادرتی که شوی خودش داره به قد این نکته که پس ما در روحه یه بزرگانی از این قدید داره این خیلی از بزرگانی بزرگان به شهر ارتکاطی این کوفه تا سال سال خیلی ارزش در حدیث ما به دهاز ارتکازات داره از سال سال پنجام یه مقدار بار سنگین حدیث به طرف بغدار رفت در بغدار ارتکاز شیعی نداره تو این هست تو محلی نشین که بغدار تأسیس شد شیعه در این محلی که بغدار ترسیل کرده مذون در انتشار شیعی را هم یعنی کتاب‌ها هست، احکام هست، افکار معروف به رأی اهل اینکه چی حدیث امام صادق جا افتادن. اما پس قطر ابن عربی عمره. ابن عربی عمره بزرگی اما شخصیت بزرگ ارتقا دهی تلفیصا نمی‌کنه. نقد عبارات، فقط نقل نمی‌کنه. نقد نیست، انتقال میراث نداره. سفتوان مرد بسیار بزرگاریست ابن عبی عمر مرد بسیار شامنه اکنه شامن ساله بزرگان بغضا در شناخت حدیث و در تنگیه حدیث و در پسیه حدیث و در انتخاب حدیث و در مقادی حدیث خیلی است. از سالهای ادنو دیویست و در از دیویست هم به قوم ادنوی به قوم میان که مجموعی از میراث کوفه و میراث بغضا به قوم میان از کل قوم مثل محمد ابن خادر ایشون حتی خانه در یکی از این ها ایشون اما ایشون ناقل هست. ما ایشون نقاط روایت باشه. حدیث شناس باشه. فقیه باشه. فرص این تا خیلی هم شاید الان در جوشبه اربایه با همه هسته با هم. هیچ کس اندازه حدیث نیست کتاب های بوده که از کوفه با به خون مورده این در یه مزبوم رفتن مثل سرد نزویاتی ایشون زید بوده احمد هر شریف که است، و بزرگوار و جنید بنام بردر ایشان یک ای کمانت ازیدی هم مثل سرد نبدالله، صفا اینا هم رو کوفه رفتن رهی حدیث داشته اینا در خون خیلی بزرگاه هست اما در هرها اون یک شهر کوفی هر جمع آسال را از در قوم اینها رو علمی فوق دوزید ما در قومت این سنهتی سنهاتیه یکی پس در روی تکازاتشی این در قوم ای بود. و در مهداد از نظر علمی و تحقیق و تنگیقی مذار است این بزاره حالا تو و اوه وقت به ذهن ما اینجوریه که امام صادق سلام الله عليه. چون یه نزولی از ما صلی در کوفه، امیدورمون که به ما، نوبت ساموده بیشتره شما ما صلی. در که اگر مشکلی بر پیش آمد که نظر ما و ما و مکتبی که ما و ما در تون اهل کوفه ما طبیعا این اینجور مخلص این طوری باشه که امام مثلا میتوند که اون چیه در پروشه مطرح بوده مثلا خود حضر برود 90 درستادشو تفصیح و تنگیر امام یه در ده درستاد مونده بگه بازه اینطور باشه لیه خب که امام تیزدار به باطل بزنه به اینو ب... علما و مخلصه تو اول مرزا شیعه بودن تو اکثر شیعه بودن خود مردم شیعه بودن خب؟ چی بوده بهش مفتلا بوده بهش عمل میکرد انتقل کرده اضافه برمو حوزه خودکوفم مثلا ما در برسه شخصت بزرگ این خوده به نیاسار اما ارتکاز کوف بزرگه به ارتکاز شیعه نیست ای راضره که ما مستاده بوده که به طرح اقبال ناس علاها بزن هم به تشگیر یه قدیده من خوده به خوده از حضرت ما علیه که به احداثون ها برای جمعه ها این برای این که در خداییی شهر بسته شهر شیعه نشین نبود اغلاب کوفه اینه که امام علی السلام می که این کار رو بکن این در حقیقت باید این طور باشه مریمونی رو امام دسته ده درصد هنوز افکار مونده که باید اصلاح بشه اون درسته بکنه ده در درسته مونده این در درسته اما رو فصل این رو مصطحبا در جدوب در در در و تا ما کامل به سلام دیگه اون چه چیز نبدایت مخابل دوستش نازو دو درست لذاب بزید نمان اینطور که این محلی ازامت را از بکنم حادثت لا تشویدون ها ختم این بال زمان ما این محدوده این قضیه حقیقیه نیست مثلا زمان ما موسفقی نبوده زمان ما موسفقی بیشتری میگه آسایه اینجه ما از اون را متقید در برداد این محضر محضر بوده خیلی رو بیدن بردکه می کنن تحقیل رو کردن صحبت این بوده زمان حضرت رضا نره رضا بگه فرزول الامارم وان حضرت چون یه بوده که سنیا کهی برداد اتحادشن شاید وجود سنیا در رضا دیشه شیعه بود مثلا ولی هفت یا مثلا هر جواب ما همچیز رو جواب سر اینکه این عبارت این عبارت فنظر و الامار و انحریه محجور شده الان کسی از او خبر نداره یا شیخ سوسی شیخ سوسی هم در حقیقت این علم یونسدونه صدوره صدوره سینه به سینه به سبب مخاب شیخ سوسی هم شنیده بوده که این مطلب بوده و از همون عوائل به مقضای از روایات و کتب چراغو ان علیه عمل شده فقط شیخ طوسی چهار نفر اسم در سکونی و ریاض نکلو این دو درسته نوحه درواز و حفص النیاض این دو تا باطله نوح درواز که شیعه است حفص النیاض هم خود که امام صادق را در علیه میگه اگر کلیت 70 تا حدیث که مستقیما از امام صادق الی کیما کار هست در حقیقت ما فکر میکنیم این عبارت چرا محیوب شو و حقیقت اینه عبارت چی بود؟ این بوده و لذا احتمال بسیار قریم سکونی ها اتعای که در حدیل که میان خودش مدربانی بوده که از بوده چی بوده حالا ما هر کار قبوده می توید بکنید اما ظاهرن یا سکونی مستمی مثلا از این کتاب رو گفتا از کتاب علیه هست یا مثلا در محروفه شنیده بوده که این کتاب علی رو عهده بکنه بیشون که دون ارزه در امام خودش کتاب رو گرفته با این سنت در امامون نستارید یه امکاندار همش امکاندار ارزه در امام کردنش امام اجمالت کتاب رو قبول فرمزد مثل همون ماروان حلیه که بعد این رو نرمونه کتاب حلیه بوده این عنوانی این شویی. و ایندام روی تحجیبی که میکنیم از همین کتاب حلیه محمد النقید، سنت بی جفرم، مستقیم حلیه قض سکرونی عدی جعبن یا حنال عبی یا حنال آقایی حنال خیلی عزیبه دو جور برخور خیلی عجیبه. این دو جور برخور با یک مستر واضح خیلی عجیبه. لذا به ذهن ما این میاد که این کتاب و کتاب های دیگر و کتاب خذاب سنن و کتاب های مجموعه روایاتی که بوده امان صالح تردیجه رو کنم به بیانه این که کدوم قسطنهای ثابته کدوم ثابت نیست ثابت نیست یعنی یا کمه همونه هم یا کرده. کردن حضرت تقریه نه مثلا اجام بریم یا حضرت نه کردن یا بد نه بوده اون جور نبوده چون چیز دیگری بوده الاخره مواردی که در دعزی که در روایتون رو بارده ما به ما این میان که افراد این کمه همون بسراد یک بریم هر جا هر سنگیه که روانه علیه قبول بکن خب به در این کلامی ویدیو ندوده این کلام در کوفه زمان ما ساده تره این روان به نهل کوفه شیعنه در شیعنه این کلام محدود دیگه این قاعده کنیم نیست که ما بریم تو سعی بخاری همینه در وضعه بکنیم تو سعی این و این صدرش هم این بوده چون تدریجاً ترسط امام صادق مارویان علیه شده طبق این کنام مقداری از کتاب سکونی و سکونی در کوپه جا افتاده نظام ما مستی در کوپه مثلا فضاعته نهیوب داری تو مثل داری مثلا جمیل مثل از مجموعه رواست سکونی که دو تا کرده فضاعته شش لذا به ذهن که من حیثون در گفه اون روز از مجموعه رواریات سکونی ده که کتاب رو نهاره کردن حتی بعض شخصی از توی کتاب بوده چون بگه در خلال سالا عبدالله فرقال این رو پروتی ها که اصلا این کتاب سکونی باشه بعض از رواری که ما اصلا بعض کتاب سکونی میشه. و لذا این بعض که ما احساس میکنیم کتاب و سکنگی نه در کوفه که مشکول میشه و نه در بغضا اون بخش در مختل اول بغضا بزرگان ما مثل ابن عمر مثل خطوان مثل بزندی مثل شام این بزرگان ما از سکنگی نرمه نکنند و در کوفه اینقدر جانب میاخته کتاب ما بزرگانی که از کوفه داریم که نرمه کنند دو سال سه پنج تا، شیش دار که ثبت ما اسمش شدیم نقل رمایت نه نقل نقل کتاب این شهاده که بحث تموم شد و, و میخوام فردا هم این بحث رو مشبر بکنیم چیزی که مشکل پیدا شد در یک مثلا بعد شهست سال، هفتاد سال، هشتاد سال این کتاب آمد قوم در قوم کتاب نقل شد فرق قوم و فقدام این اون تهمول اساسی که در قوم انجام گره این شو. کتاب من دیشن نباید کنم که این برنامه کانکریسه چهارسان نوزیه که در مجموع کافیش حدیث از نوزیه که چهارسان که حدیث از سکونی تا اگه نباشه و محظم این شاید بسیت و سیفر کار کشه هر یه نقراری هر یه نقراری هر این, این کتاب سکونی کتاب سکونی تو اون جانب. و عرض کردیم و ترسط ایگران نهاشم هست بعد از ایگران نهاشم ادهی از بزرگان هم نه بود کنند بیشترینشون علیه نرول که دو سه محمد این حسن محمد این حمد این یحیاس همه اینا میگن نوفلی عن سخونی نوفلی عن چاسه گیرس کنگرس کنگرس شخصیت بعد از اینا طبقی بعد از اینا کلیگی زیاد میکنه یعنی شخصیت بزرگ قوم که به تحبیر نجاشی او سفر و ناسفر حدیث و عصبت عنفی کلیگی اما طبقی قبلشون مثلا در طبقی مشاهیشون قدید میداره طبقی قبلتشون احمد عشقی نهاری کنا احمد عشقی نهاری میکنه و لذا احتمال این این دو اختلاف نفر چون ما یه مقدار زیادی کلینی و متعصد رو در احمده هشری میبینیم احمده از کتاب سکونی نرم خیلی تنچی در کتر کافی من نگاه کردم مثلا دو تا نرم نکنه از پدرش از کتاب عبدالله و مخیره از سکونی که هم روایت یکی هم نرم نکنه از وسیعون سریع از کتاب فزار. از فضاده از سکونی که هم اما و قطعا احمد علشری در کوفه بوده خوب جبقت بکنیم این حالا این شما توضیحات بیشتری عرض بکنم احمد علشری قطعا به کوفه رسته و کتاب سکونیم قطعا زمان در کوفه مطرح بوده حالا یا نوفری بود یا غیر نوفری هیچون نهارده این کتاب با خودش بخون نهارد بعدم که قوم آمده نوفری درها ساسته نوی لذا ما عصوداً دو راه داریم برای عصود به نور یکی کسانی که گفت شینه کسانی که در رایی مثل احمد برقی احمد برقی در خوب رایی ازشیده احمد عشقری اصلاً از این کتاب نهبیده پس در حقیقت تحول که که شد در شاگرده های ابرانه هاشم تحول خیلی دنگه تاگیخ بگذاریم؟ تحبول در شامیرده های اگرازه هاشه و در قوم همه اینجور اینجوره نوفده انسته کنی نوفده انسته کنی بیشترین اینجور علیه نبراهی که این نوسته در اشتران محروم کنه میده که شیح از این نوسته نعمی کنه محمده نبراهی محروم از این نوسته محمده نحمده نیحیان و سعده نبدالله این اگراغیم این نوفده پس ها اینجا روشن که تو ما انظره اینی تماماید به نتیجه برسیم روایات سکونی در حقیق روایت چندتا روایات قبول چند شده نه کتاب در قوم هم در در سلطان قبول نکردن تقریباً از زمان شاگردن های ادرای ماشه و بعد شاگرد بردیشون مثل کولینی این کتاب تو اون جا بفتران نسبت قوم برد. و برداد و کوفه این طور شد در کوفه و برداد به, ست... به کتاب و سکونی همه نشد الا ده چند چند در چند روایت یعنی چند روایت سکونی رو قبول کرد در قوم کتاب رو میترد الا بعد این روایت در قوم اینجور شد کتاب قبول شد الا بعد این روایت به هر حال قطعا نرگون استثنان شده قطعاً تو قرد هجم شد و تفاوتشون خیلی زیاده بگیم دوستا مکتب خیلی زیاده سلام الله علی و محمد